فاطمه عزیزم، آبجیه قشنگم، سلام امروز، درختی که من کاشتم تو الان داری بارش رو میبینی، سالش شده، فکر می کنم یکی از آدم هایی که چه در دوران مجردی و چه در دوران متحلی، تلاش های من رو برای این، درخت دیت تو بودی امروز تو اینجا کار میکنی و مطمئنم که یه روزی قرار این کار کردن تمام وقت بشه و شاید آب یا اون روز آبیاری این درخت با تو با امیر مهدی باشه و امیدوارم که از چیزی که من کاشتم خوب مراقبت کنید چون که تو از معدود آدم هایی هستی که میدونی من چقدر برای این کار زحمت کشیدم اگر یه روزی من بودم یا نبودم خیلی مراقبه این درخته باش چون من از 12 13 سالگی همه زورمو، همه اتفاقات و خاطرات قشنگی که میتونستم برای اون سنم بذارم گذاشتم پای این درخت و در اسم نه سالشه ولی خب یه چاردر سالی هستش که داره من میاد انشالله که قدرش رو بدونی و یه روزی نگاش کنی کیف کنی از این که همچین جایی همچین شرکتی هست به آیندت خیلی امیدوارم میدونم که یکی از مدیران موفق مثل میلاد مثل خواهی بود ایشالله اون روز خیلی دیر نیست و... و میایی و پرچم و سکاندار این بازرگانی و این تامین کننده و تولید کننده ای آینده خواهی شد قدرش رو بدون خیلی براش تلاش شده خیلی براش زحمت کشیده شده ایشالله که افتخار داشته باشم اول از همه من باات اینجا همکار واقعی بشه تمام وقت و یک ایده و یک فکر هم علاوه بر ستاده که تا الان امروز بوده بهش از بشه خیلی ازت ممنونم ایشالله که شاد و سلامت و قبلبراغ و سرحال بشه.